سفر من تقریبا یک سفر به ارانو نشده بود و تا دقیقه نواد هم معلوم نبود که این اتفاق بیفته که بتونم اون چیزهایی که بهترین و خوشزوغترین و کنجکافترین دنیا دنبالش هستن رو نگاه بکنم یا نه؟ به همین خاطر اجازه بدین خیلی راجب فیزیک و چیزهایی که من حداقل چندبار چند بار در دانشگاه به خاطرش نتونستم نمره بالاتر از ده بگیرم و به همین دلیل نمیدونم چرا من باید توی این آزمایشگاه میرفتم و بازدید می حرف نزنم و از این حرف بزنم که پشت صحنه ای اون چیزی که توی سرمن دیدم چی بود و چه چیزیش به درد ما میخوره توی تصویر تقریبا مشخصه که ما لبه مرز فرانسه و سوئیس یکم این طرفتر میتونیم مجموعه متمرکز آزمایشگاه بزرگ سرین رو ببینیم اطلس ساختمون های مختلفی که متعلق به سرنه اگر آدرس فرانسوی بخواین میشه اون چیزی که چپ تصویر می‌بینین. اگر آدرس از سوئیس بخوایم می‌شونم اون چیزی که راست تصویر می‌بینیم. من با خط ترام شماره 18 توی این مسیر تقریبا در همچین نقطه‌ای پیاده شدم و بعد از اینکه اولین جلسه و نشست رو داخل این ساختمون داشتیم، آمدیم و یک دوری زدیم و از این طرف به مجموعه اطلس و اون گلوب بزرگ معروف ساینس اند اینوویشن رسیدیم. اون چیزی که این جدیش کنم تصویر را چه چیستی خود سرن فکر کنم هر کسی علاقه‌مند باشه با فیزیک و علوم پایه می‌تونه اطلاعات زیادی رو کسب بکنه ولی اگر دور تون بخوام نوشته اینجا رو بخونم ذوالفقار دانشی که خودش اتفاقا از المپیادی‌های فیزیک شاگردی خیلی زیادی داشته و برای پرونده‌ای که دو سه ماه پیش در مجله دانشنام منتشر شد گفته که مجموعه شتاب شتاب‌دهنده‌های سرن از ماشین‌های بزرگی تشکیل شدن که به مرور زمان ساخته شدن هر کدومشون انرژی بالاتری نسبت به مدل قبلی دارن و هر ماشین که اسم شتاب‌دهنده است پرتوهای پروتون رو به انرژی مشخص میرسونه و بعد به ماشین بعدی تزریق میکنه تا اینها مدام به سطهای انرژی بالاتر برسن هر کدوم مکانیزمهای سنجش و ابزارهای خاصه خودشونو دارن که برای آزمایشهای ذرات بنیادی تو انرژیهای تر استفاده میشن فیزیکدانها با استفاده از این شتابدهنده‌ها ذراتی مثل پروتون رو به انرژیهای خیلی بالا میرسونن و اونها رو به هم میکوبن تا ذرات ریزتری که توشون پنهان شدن آشکار بشن در حال حاضر این تنها روشیه که همه تلاش میکنند به ثانیه 10 بتوان منفی 3 منفی 36 شکل این دنیا برسن جایی که من رفتم و ازش بازدید کردم مجموعه ای است که بر اساس آمار منتشر شده رسمی خود سرن تا اوایل سال 2016 بیستوی کشور عضو داشته و این بیستوی کشور عضو علاوه بقیه کشورها که شما ایران رو هم میتونید جزو بقیه کشورهای همکارش تماشا بکنید و کاش یکی از اینجا اگر بگردم 54 و نفر دانشمندی که تو این پروژه و با سرم کار میکنن اینجا بود میتونه اطلاعات فیزیکی بیشتری رو با همه شما در میون بذاه. این ۲ کشور تقریبا سالی یک میلیارد دلار که اگر تقسیم بکنم بر جمعیت 739 میلیون و500 خورده هزار نفر طعای اروپا. بودجه میذارن تا بتونن اینجا تحقیقات هسته‌ای و فیزیک بنیادین خودشون رو انجام بدن این بودجه تقسیم بر اون جمعیت میشه تقریبا به ازای مثلا با قیمت هر یه فنجون قهوه رو 1.35 سنت یا یورو 35 سنت فرض بکنیم یک همچین پولی در سال به ازای هر یک شهروند اتحادیه اروپا جالبه بدونید که مثلا در جایی مثل سرن بوده که پدیده بسیار بسیار آشنای این روزها یعنی وورلد هم از جمله یافته‌های غیر فیزیکی آزمایش‌هایی است که در مجموعه سر متولد شده یا اگر بخوام مثلا به زبان دیتا باهاتون صحبت بکنم اون چیزی که هر سال در مجموعه آزمایشگاه‌های الچسی تولید میشه که الچسی شامل 140 تا مرکز 33 کشور دهقاق 100 هزار تا کامپیوتر و 17 هزار تاشون توی خود سر وجود داره داره سالی 30 پتابایت دیتا تولید میکنه که هر یک پتابایت هم شما برابر 223 هزار تا دی در نظر بگیرید تازه این بخشی از اطلاعاته که فیلتر شده است که به کمک همه اینا تلاش میکنن بتونن پرساش های جدیدی رو برای دنیا پیدا کنند. اونجا به من گفتن که ما چیزهایی که اینجا پیدا میکنیم ممکنه آینده تمام اون که داره الان در دنیای فیزیک تدریس میشه رو زیر رو بکنه به خاطر اینکه ما فقط سوالهای جدید رو می میکنیم تولید بکنیم و جوابهاش رو جای دیگه و دیگران باید پیدا بکنن توی این تصویر که شما ملاحظه میفرمایید تو این تصویر داره میگه که مجموعه آزمایش هایی که داره انجام میشه درن میخواد ما رو برسونه به همون زمان خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی نزدیک به فرضیه بیگ بنگ و شکلگیری دنیا. برای همین من یه عالم اسم که یادم نمیاد که هر کدوم از این نام که شما با های مختلف توی این تصویر میبینین تو فیزیک چی هستن ولی برای فیزیکتان احتمالا نام های آشناییست. كونسکاوی بزرگ اینه که تمام این خزینه ابوجو و عظمت برای اینه که ما بتونیم بفهمیم در اون ثانیه ده به توان منفی و 36 چه اتفاقی در این دنیا رخ داده من واقعا نگاه هم شبیه آلیس بود در سرزمین عجایب در شرایطی که وقت شروع به بازی توی سرن کردم اول داخل سرن بودم. ولی نمیدونستم اجازه میدن که ما با آزمایشگاه ها سرک بکشیم یا خیر به همین خاطر از آخر قصهم اگر بخوام شروع بکنم این تصویر تصویری است که معمولاً در شرایط عادی کار کردن اثر اصلا امکان کردنش وجود نداره به این خاطر که به من گفتن وقتی سرم داره کار میکنه و شتاب دهنده فعاله هیچکس اجازه نداره به هیچ عنوان نزدیک بشه به مراکز اصلی و این تصویر که در رسانه ها زیاد دیدیمش و مشابه این احتمالاً مال که از زمانهای خواب دستگاه یا زمانهایی است که کار نگهداری و تعمیرات داشته اتفاق میافتاده و تصویر آشنای خیلی زیاد دیگی که همه احتمالا تماشاش کردن این عروف ساینسن اینویشنه که ما نتونستیم داخلش بریم به دلیل اینکه اونجا فعالیتی داشت اتفاق میافتاد که گفتن اگر نوبتی به شما برسه احتمالاً در یکی از اون گرد همایی‌های سالانه است که جمعیت زیادی اینجا جمع میشن و شما هم میتونید اونجا حضور داشته باشید ولی توی این تصویر شما میبینید که ما واجه های آشنایی هم داریم مثل عمرال الخيام حل مسائل جبریه با ادوات هندسیه و کاش که به حروف فارسی نوشته میشد مونتا عربیه و خوشبختانه روی این سازه فلزی شما بسیاری از آدم‌های موثر حوزه فیزیک رو میتونین تماشا بکنین این تصویر که شما الان ملاحظه میکنین یعنی این تخته سیای که روش سری نام نوشته شده نقطه تردید بسیار بزرگ و شاید بگم درام اصلی قصه ای بود که من باهاش مواجه شدم توی این تصویر شما ملاحظه میکنین که سرعت فیزیک من هنوز تو مسئله نسبیت باید یا خودم سریع‌تر برام یا کندتر اینجا وقتی که اسامی کسایی که اجازه داشتن بعد از روز آخر کنفرانس سالانه انجمن تیریز اروپا به بازدید ملحق بشن و نوشته بودن و ما با کنجکاوی خیلی زیاد میشه اینکه منتظرن نتایج کنکور اعلام بشه تا اسمشون رو ببینن هرچی توی تو این اسم گشتم دیدم اسم وجود نداره و فقط می‌فهمیدم که این لحظه لحظه حیاتیه اسم اگر روی اون برد بره یعنی میشوه این رخداد تاریخی صورت بگیره که من هم سرنو ببینم اگر اسم اونجا نره انگار که ما ویزای ورود و بازدید سرنو نداریم خیلی تصادفی متاسفانه خیلی خوشحال شدم و باید تشکر کنم از امیر نجاری و علی تاهری که اونا در لوزان موندن و در ایفیه فل و با ما به جنف نیومدن و ما تونستیم با مذاکره کردن قانع بکنیم میزبان رو که به جای دو هموطن دیگرمون که نیستن نام محمود کریمه و سارا سلیمی هم اونجا نوشته بشه و در اون لحظه گفتن که به سر خوش اومدید. وقتی وارد سرن میشین، اولین چیزهایی که شما تماشا میکنین یک فضای کاملا غیر علمی و یک خوشامدگویی خیلی نرم و گرم و جذاب و سمیمان است به حروف به زبانهای مختلف به شما خوشامد گفتن و داخل این مجموعه شما از مثلا کیسه های پارچه ی یورویی تا قصسم اقسام شرت ها با نام و نشان سرنیا، انواع اطلاعات فیزیکی و زندگی نامه دانشمندان مختلفی که در طول تاریخ تو فیزیک کاری انجام دادن رو ملاحظه می‌کنید. و باز اگر جلوتر تصویرهای بعدی رو بخوام به شما نشون بدم یه خوش آمدگویی خیلی نرمه که شما بتونین در مسیر تاریخ قدم بزنید و بفهمین که در دنیای فیزیک دست کم چه گذشته اتفاق اصلی یک بخشش پشت دیوار همین سالن رخ میده جایی که به ما توضیح میدادن که اصلا سرن چی، و چرا متولد شده و در اون چیکار میکنن اونجا بود که یه باز یک اتفاق خوب دیگه افتاد که من الان به اون دلیل کنار شما هستم وقتی به ما توضیح دادن سرن چیز آخرش با یه سوال همه ما رو دعوت کردن به بازی و معلوم هم این بود که کیا به خودشون دوربین آوردن تو این لحظه معمولا ما تردید داریم بگیم داریم یا نداریم چون اگر بگیم ممکنه بگن لطفاً دوربینتون رو بدین اگر بگیم نداریم ممکنه نگن که کاشکی دوربین به خودتون آورده بودید و خوشبختانه جوابشون جواب دومی بود. گفتن کیا دوربین دارن؟ من دستمو بالا بردم و دو نفر دیگه گفتن خوش به حال شما چون دوربینتون رو روشن کنید از هرچی چیزی که دلتون می‌خواد فیلم عکس بگیرید و بعدن اگه دوست داشتید اونو به دیگران بدید. اینجا هیچ چیزی محرمانه نیست. اینجا ما دنبال ثبت کردن هیچ سند اختراعی و پوشوندن نگاه داشتن اون برای مردم نیستیم. اینجا درها بازه برای اینکه همه این بودجه تحقیقاتی که صرف میشه بتونه سوال‌های جدید رو برای دنیا مطرح بکنه و اون‌ها در آینده ببینن. و ما می‌تونستیم از دو استفاده کنیم که در اون آب و هوای خوب ما رو به جاهای مختلف این آزمایشگاه بزرگ می‌بردن و قدم بزنیم و ما از راه حل بازم دوم استفاده کریم و مشغول قدم زدن شدیم می بینیم که انواع و جاهایی که در سرین وجود داره ترکیبیست از اون بخش سخت افزاری به علاوه بخش نرم زندگی جاری مثلا اینجا رستورانی است که ما سر زهر رفتیم و بعدا امیدوارم شما هم دلتون بخواد که اونجا یه وعده غذا رو حتما نوشه جان بکنین خودروهایی که تو سرین میگشتن فضای مومی سرن هتلی که محل اقامت همه کسانی است که به عنوان مهمون اونجا مراجعه میکنند من نرخاش البته نتونستم چک بکنم چون به عنوان مهمون تو اون چند ساعتی که ما بودیم بار ما رو در اتاق نگهداری ابزار وسایل نگار داشتن. موجوداتی که از نگاه من بیشتر به کاراکترهای های انیومشن های این روزی ولی اینها دستگاه ها و تجهیذاتی هستند که از 1954 یعنی بعد از جنگ جهانی دوم، 1336 هجری خورشیدی تا به امروز داشتن توی مجموعه کار میکردن تمام تجهیزات، شناسنامه ها و اطلاعات ریزی دارن که برای مشتاقان علم و حتما میتونه داده های خیلی خوبی رو به همراه داشته باشه. و برای ما یک به یک توضیح دادم با احترام کامل به پدیدآورندگان هر رخداد بزرگی در حوزه علم و تکنولوژی از برندگان جایزه نوبل و کشف ذره هیگز تا باقی اطلاعاتی که تو فضای تخصصی فیزیک مطرحه. اما اینجا جایی است که مشغول آزمایش نیست کسی. اینجا جایی است که جزء ورودی‌های فضای پذیرایی و رستوران سرنه. اون چی که میتونیم ما ببینیم آدم‌ها وقتی خسته میشن و در طول روز میخوان برن انرژی به خودشون تزریق بکنن، حالا چطور میتونن تو چه محیطی پذیرایی بکنن؟ انواع و اقسام های خوشمزه یک مکانیزم بسیار بسیار جذاب برای پذیرایی کردن و از همه آدم ها مبنای اینکه چه کسی تو چه بخشی کار میکنه پیشنهاد و توصیه چی خوردن و با چه مبلغ اون رو پرداخت کردن ساختمون مهم دیگه که ما تونستیم بازدیدش بکنیم و تصویر واقعی کار روزمردشون رو شما میتونین ملاحظه کنین اونجا فضای خود اطلس یا مجموعه است که مشرف به شتاب دهنده است. همه چیز برای بازدید کننده طراحی شده بود از سالن سینمایی که توش فیلم سوابدی به ما نشون دادن که تا لحظه آخر تکمیل شدن فراینده ساخت آزمایشگاه سرن بود تا این محیطی که من از پشت دیواره شیشه‌ای که شما با این درجه میتونیم ببینید که محل اتصال دو شیشه است و این پشت ما به راحتی میدیدیم که دارن اونجا تو اتاق فرمان واقعا چه کاری انجام میدادن و حتی در موقع عملیات واقعی هم این فضای بسیار بزرگتر از مساحت خود اتاق فرمان برای بازدیدکننده ها مهیا بود تا شرایط کار بتونن تماشا کنن و خطوطی که توی سایت های مختلف محدوده ی غیر مجاز برای تردد من به عنوان بازدید کننده و مجاز برای تردد هر آدم دیگه‌ای که به عنوان بازدید کننده اجازه ورود به سرین رو داشت نکته خیلی جالب برام این بود که بسیاری از آدم ها شبیه این مهندس موسپید با علاقه و شوق میگفتن ما همه اینجا هستیم ایشون دوازده سال در اتاق فرمان آزمایشگاه اطلس کار کرده بود میگه ما همه اینجا هستیم تا پجوهشگره و فیزیکدان‌ها هاشون رو به ما بگن و ما بتونیم خدمتگزار اونا باشیم برای ساختن دستگاههایی که اونا بتونن یه قدم به پیدا کردن جواب سوالشون نزدیک بشن. یه ذره برعکس با دنیای واقعی است که همه در خدمت مهندس ها هستن به نظر میاد توی جامعه ما. اونجا همه مهندسا در خدمت فیزیک‌دان‌ها و بقیه محققینی بودن که داشتن کار حرفه‌ای خودشون رو انجام میدادن و برای همه چیز ماکت بود. یعنی ما اگر می‌خواستیم ببینیم قبلا چطوری این آزمون ساخته شده یا این سایت تجهیز شده و با چه امکانات و متریالی ابزارها رو آوردن، همه رو به ما با ماکت‌های مینیاتوریی که اونجا وجود داشت، می‌تونستن نمایش بدن و سوال‌های بسیار ریزی که میشد از تک‌تک تک گوشه کنار این مجموعه و این سایت دید و می‌بینید که چقدر خلاقانه، فضای سخت افزاری رو نرم می‌کردن با کمک ایده‌های مفید کاربردیشون. نکته دیگه ای که میتونم بهتون بگم، فرایند پیچیده آماده سازی است. مثلا در لحظه که ما توی هسرین بودیم، اواخر سال 2014، این دستگاه که چهار سال طول میکشه تا مگنت ها رو تست بکنه و اگر مگنت ها سالم بودن، اونا بتونن توی یک سیکل شتاب دهنده مورد استفاده قرار بگیرند. و همه اینها داشتن مثل چرخ و فلک کار منظم میکردن که دوباره مشتاقانه به نوبت بعدی چرخیدن بپردازند. این, این مجموعه داخلی اون گلابی که عرض کردم خدمتون و سالانه نشستی برگزار میشه که ما در تاریخ غیر از موعد اون نشست رسیده بودیم و همه توضیحات فنی و هایی که شما میتونید به اطلاعاتش با سادگی دست پیدا بکنید من نیاز دارم اسلاید 48 رو تماشا کنم اگر ممکن باشه که راجبه اون هم یکی دو تا نکته رو بگم و اون هم اینکه گفتن بخش جذاب و جدیدی متولد شده درسه که اتفاقا همون مدیر 12 ساله آزمایشگاه اطلس که مدیر هماهنگی منابع بود متولدش بود و اینجا یکی از بخش‌های خیلی خیلی جذاب برای من حد و حوزه ایده پردازی و نوآوری بود جوان‌های حد اکثر 25 ساله از همه جای دنیا فراخوان میشن و معمولاً هم با روش پیدا کردن استادای خوش و خوش‌ذوقی که بلدم دانشجوهای خوب و استدادشون رو کشف بکنن، اونها معرفی میشن به سن و این ادا ما بدون اینکه که اصلاً چیزی از فیزیک بدونن یا نیاز بشه توی آزمایشگاه‌های سن پا بذارن، درگیر کار ایده پردازی میشن. از یک ایده فوق العاده ساده مثل اینکه که چیکار بکنیم که یک مادر بزرگی که با عصا حرکت میکنه یه ذره اوضاع براش راحتتر بشه یا یه تاب وسورسوری بسازیم که بچه‌هایی که مثلا اوتیسم دارن بتونن از اون بهتر استفاده کنن، هیچ ربطی به فیزیک و پیچیدگی‌های محاسباتی کار اونها نداشه. و اینها خلاقانه با ترکیبی از رشته های مختلف از فلسفه و علوم و ریاضی و فیزیک و شیمی و طراحی صنعتی و معماری و ادبیات دوره هم جمع میشن تا در قالب تیم های چند رشته ای بتونن ایده های جدید رو بپرورن و با همدیگه در قالب تیم کار بکنن توی سر کسی به اسم رئیس وجود نداره کسی نمیتونه دستور بده که اعضای اون 21 کشور و اون مجموعه بیش از 25 هزار نفری که عضون یک کاری رو با دستور در یک تاریخ تموم بکنه میتونن راجع به اختلاف نظرشون حرف بزنن ولی یک چیزی شبیه هیئت مدیره در رأس سرنه که فقط با یک هدف مشترک تیمی میتونن خودشون به نتیجه برسن اون هدفم اینه که ما بتونیم سر زمان بندی های مشخص به دلیل هزینه بسیار زیادی که داره میشه به سوال های خودمون و جوابهایی که نیاز دست پیدا بکنیم این تیم ها وقتی کارشون تموم میشه فرصت دارن که هر کدوم ایده های خودشون رو ارائه بدن این ارائه خیلی راحت ات میگفتن می ما اینجا دو دونه دستگاه قهوه‌ساز داریم و اونجا پرده نمایش شما به اندازه‌ای که بتونین از اونجا یک زمان حدوداً 30 ثانیه‌ای فنجون قهوه‌تون رو بردارین و تا برسین به اینجا باید خروجی عیدتون رو مطرح کنین اگر جذاب بود با تشویق می‌فهمید که عیدتون گرفته اگر جذاب نبود شما فقط می‌تونین با قهوه‌تون بریم بشین و فنجون دومی برای شما در کار نیست اونچه که من از دیدن بیشتر پشت صحنه ای بود که نشون میداد توی مجموعه بزرگ مطالعاتی و آزمایشگاهی چقدر حال و هوای خوب برای آدم‌هایی که علاقه‌مند و مشتاقن اتفاق می‌افته من وودی دو نهارخوری، همون تصویر اولی که گفتم جاییه که شما وارد می‌شیم برای خوردن دو صدای فارسی افسادن شنیدم یک خانوم آقای جوون ایرانی که اگرچه خیلی خوشحال بودن که فرصت دو ساله کار تحقیقاتی توی سرنوز داشتن ولی واهمه دلشون میسوخت چون گفتن ما می‌دونیم که تا 2 ماه دیگه فرصت مطالعاتمون اینجا تمومه خوشحالیم که میریم جامونو به کسی دیگه ای میدیم ولی ناراحتیم از این که کاشکی میذاشتم و بیشتر اینجا بمونیم به خاطر اینکه اینجا دنیای کشف ناشناخته هاست و کسی دیگه ای انگار نمیتونه بیاد و دوباره در اینجا زندگی بکنه امیدوارم از این عکس یادگاری همه شما زیاد داشته باشین امیدوارم هر جایزه‌ای به هر کسی اگر خواستیم تو ایران بدیم از بچه‌های ژورنالیست حوزه علم فناوری تا اونهایی که کار فیزیک میکنن یکیش حداقل باشه که بتونیم اونهارا دعوت بکنیم به یک بازدید از سر برسی.